باز که بشود آعرف بیک مردی است 62 ساله با قد متوسط و هییکلی نسبتاً چا نه بگو به گوب خنده است؟ نهکن سالهاست با زنش در خانه دو طبقه ای که اارسیه پدری است در محلهشانتاشی زندگی میکند. آعرف بیک از آن آدمهایی است که گاه با حسرت ازشان یاد میکنیم و میگوییم حیف که دیگه همچین آدم هایی پیدا نمیشه مردی است درستکار راستگو با وشدان هیچ وقت پایش به خلاف باز نشده دستش به گناه آلوده نشده دو اتاق طبقه دوم خانهش پر از کتاب است. بزرگترین لذت زندگیاش غرق شدن در میان کتاب ها و انفی کشیدن است. سالها دبیر دبیرستان های مختلف بود اما بعضی وقتها مأمور به خدمت در سایر ادارات دولتی می شد تا در آن ادارهها از معلوماتش استفاده. روزی مردی وارد اتاق آرف بیک در اداره محل کارش شد مرد اول خودش را معرفی کرد و گفت پلیس مخفی است بعد گفت تو دبیر خونهتون کسی به اسم یاشار کار میکنه قربان آرف بیک یاشار را خیلی به خاطر نمیآورد از این فکر که باید برای یاشار به پا بگذارد حالش بد شد پلیس مخفی گفت: نمیدونم اگه میدونستین یاشار چهجور آدمیه اینجا بهش کار می دادین یا نه تو اداره پلیس پرونده داره معمور پلیس این را که گفت مثل پلیس ها لبخند زد. فکر میکنن میتونن از دستم خلاص بشن. پلیس همیشه مثل سایه دنبال همچین آدماییه موهای یارهیک سیخ شده بود از پلیس به دلیل هشداری که داده بود تشکر کرد پلیس گفت: با این حال خودتون میدونین که نگهش دارین یا اخراجش کنین. من فقط فظیفهم بود در این مورد بهتون اطلاع بدم تا هشیار باشید. آرف بیگ پس از رفتن پلیس دستور داد در مورد یاشار و اینکه کیست و چطور آدمی است تحقیق بکنند گفتند کارمند قراردادی و آدم پرکاری است با این حال نمی مسئولیت این را بپذیرد که کسی که در اداره پلیس پرونده دارد پیشش کار کنند چرا باید وقتی آدم های درست کار شغلی پیدا نمی کنند به آدمی سابقه دار کار بدهد آریف بیک فوری دستور داد یاشار را اخراج کند. یاشار به اتاق آرف بیک آمد، مردی سبز رو و لاغر بود، حدود چهل ساله، در حالی که عشق در چشمهایش حلقه زده بود گفت قربان میدونم برای چی منو اخراج کردین؟ خیلی وقت بود منتظر همچین روزی بود آرف بیگ اولین بار در زندگیش بود که دانسته با فردی سابقه دار رو در رو شده بود چون نمیخواست بیشتر از این به حرفهایش گوش کند، با دستش به در اشاره کرد که یعنی برو بیرون یاشار بیرون نرفت گفت خواهش میکنم دو دقیقه به حرفان گوش بدیم بهم افترا زدن ماجرا مربوط به شونزه سال پیشه آدمی زاده دیگه اشتباه میکنم من تاوان اون اشتباه همو خیلی وقت پیش دادم آرف بیک فریاد زد برو بیرون زره هم دلش به حال کسی نمی که در اداره پلیس پرونده داشت مدتی پس از اخراج یاشار پلیس مخفی دیگری به دیدن آرف بیک آمد و گفت. یکی از ها در اداره پلیس پرونده دارد و خود عارف بیگ می‌داند که آن آبدارچی را نگه دارد یا نه. پلیس در این باره چیزی نمی گفت. فقط هشدار میداد که در آینده ممکن است کار دستشان بدهد. آرفبیگ بیگ آبدارچی را هم اخراج کرد. آبدارچی به پاهای عارف بیگ گفتاد و کنن گفت: این کار نمی کنم آقا، 20 سال پیش بود یه قبطی کردم. اون موقع جوون بودم، گول دوست و رفیقو خوردم." گفت: خب برو یه کار دیگه پیدا کن هر کاری که پیدا میکنن فوری میان خبرشون میکنن خدا هیچ رو تو اداره پلیس پرونده دار نکنه بساتی هم نمیتونم بشم سرو بچم عارف بیگ گفت آبدارچی را بیرون بیاندازند عارف بیگ حیرت کرده بود از اینکه میدید این همه آدم در اداره پلیس پرونده دارند ماهی یکی دو پلیس نخفی میآمدند و اطلاع میدادند کدام کارمندان عارف بیگ در اداره پلیس به چه علتی پرونده دارد؟ اوریس های مخفی نمیخواستند آدمهای پرونده دار را از کار بیکار کنند. در این خود خداعرف بیگ تصمیم می گرفت. اگر میخواست نگه می داشت، اگر نمیخواست بیرون میکرد. فقط وظیفهشان را انجام میدادند تا اگر بعداً حادثه ای پیش آمد به مسئولیتشون عمل کرده باشند. صبح یکی از روزهای تعطیل ملیه خانم همسایه عارف بیگ به خانهشان آمد. میخواست بابت پسرش آتیلا خواهشی بکند. آتیلا توی دردسر افتاده بود. در دبیرستان گویا کارهای خلاف کرده بود مادرش میگفت همش دروغ و افتراست اما آرفبیک باور نکرد که این حرفها افترا باشد با خودش میگفت همه آدمهای سابقه دار میگویند قربانی افترا شدند این را عارف خوب فهمیده بود پسر ملیخانوم بعد از آن دیگر دست از پا خطا نکرده بود اما هر وقت چیزی از جای دزدیده میشد می, می آمدند آتیلای بیچاره را میگرفتند تا وقتی دزد اصلی دستگیر شود نگهش می داشتند. اولین بار بود که عرف بیک دلش به حال یکی میسوخت که در اداره پلیس پرونده داشت پدراتی را دوستش بود مرد بیچاره هشت سال پیش مرده بود حالا زنش آمده بود و از آعرف بیک خواهش میکرد اگر از دستش برمیآید کاری کند پرونده پسرش در اداره پلیس را از آنجا خارج کنند زن گریه کنان میگفت خدا گرگ بیابونم پرونده دار نکنه پسرم هیچ جا نمی تونه کار پیدا کنه چند بار رفته سر کار اما یه هفته نشده اخراجش کرد. رفت فروشندگی اونجا هم نذاشتن کار کنه. عارف بیگ دلش به حال آتیلا سوخت. با این حال نمیتوانست به کسی که در اداره پلیس پرونده دارد و سابقه دارست کمک کند. سه روز بعد از صحبتش با ملیه خانم دزد به خانهشان زد. دوست شبانه آمده بود. با غذاهای توی یخچال و را سیر کرده و یک جفت کفش از جا کفشی برداشته و رفته بود. آرف بیک سر از این کار در نمی آورد چون دزدی که شب وارد خانه شده بوده می توانسته دست کم چند شیء گران قیمت از خانه بدزدد آرف بیک به اداره پلیس خبر داد که به خانهشان شان دزد آمده به کسی شک نداشت سه روز بعد از آرف بیک خواستند به کلانتری بیاید در کلانتری شانزده دزد سابقه دار بود آتیلا پسر مریه خانم همسایه هم بین آنها بود از آرف پرسیدند به کدامشان شک دارد آرف بیک حیران نتوانست چیزی بگوید. شب همان روزی که با آن شانزده دوز در کلان رو روبرو شده بود، خودش دوز را گرفت. ساعت نیم بعد از نصف شب توی رخت خوابش رفته بود. از طبقه پایین صدای تق و تق شنید. دنپایی هایش را هم پا نکرد. پا پاورچین، پاورچین از پله ها پایین رفت. صدا از آشپسخانه می آمد. از لای در توی آشپزخانه را نگاه کرد. دوست با چهرهی زرد و اندامی لاغر و ضعیف آنجا ایستاده بود معلوم نبود چند ساله است راحت بود انگار که در خانه خودش باشد اجاق گاز را روشن کرده بود و قابلمه ای رویش گذاشته بود قابلمه را از روی اجاق گاز برداشت یک بشقاب از دلمه توی قابلمه پر کرد و روی میزش پس خانه گذاشت نان را قاچ قاچ برید توی لیوان آب ریخت از قفص یک شیشه ترشی برداشت و مقداری از آن را داخل بشقابی ریخت و روی میز گذاشت نمک و فلفل رو هم از کابینت برداشت و کنار بشقابش گذاشت. بعد صندلی پشت میز را کشید و رویش نشست و با خیال راحت مشغول خوردن شد. بعد از آنکه غذایش را تمام کرد، از روی صندلی بلند شد. عارف بیگ کنجکاف بود بداند دزد می‌خواهد چه کند؟ برای اینکه نبیندش فوری خود را عقب کشید. پشت در سالن پنهان شد. دزد وارد سالن شد. کلید برق را زد. ساعت مچی را روی میز دید. دزد ساعت را برداشت دوباره سر جایش گذاشت حتما نگاه کرده بود ببیند ساعت چند است عارف بیگ کفش‌های خودش را شناخت که پای دزد بود پس دزدی که قبلا به خانهشان آمده بود همین بوده دزد وارد راهرو شد و جلوی کمد رخت‌آویز رسید پالتو و بارانی به رختآویز آویزان بود دزد چتری را که به رختآویز آویزان بود برداشت داشت در کوچه را باز می‌کرد که عارف بیگ صدایش کرد هی hey! صورت دزد دیده بود حتی اگر فرار هم می, کرد می توانست مشخصاتش را برای پلیس تعریف کند اما دزد اصلا اهمیتی نداد به طرف عارف بیک برگشت دو مرد مدتی همدیگر را نگاه کردند کسی که اولین حرف را زد دزد بود میخواین به پلیس خبر بدین عارف بیک که با دیدن ملایمت دزد دل و جرأت پیدا کرده بود گفت پس چی که به پلیس خبر میدم دزد روی صندلی دم در نشست و گفت خب خبر بدین عارف بیک خیلی تعجب کرده بود با صدای لرزان پرسید چرا کار نمیکنین و روزیتونو با زور بازوتون در نمیارین دوست که خسته به نظر میآمد تکرار کرد یالا زود باشین پلیس رو خبر کنین مگه بهتر نیست کار کنین دوست گفت ای بابا آخه من تو اداره پلیس پرونده دارم تو که ملتفت نمیشی ساکت شدند دوست از جایش بلند شد گفت من دارم میرم. چتر کنار صندلی گذاشته بود دوباره برداشت. آخه بد جوری داره بارون میاد. واسه این. خدا افس. دوست از خانه بیرون رفت و در راب بست. دو ماه بعد از این اتفاق در زندگی عارف یک تحولی رخ داد. استاد دانشگاه کابل شده بود. باید دو سال در افغانستان میماند. زن و شوهر خود را برای این سفر آماده کرد. خانه را هم که نمیتوانستند سال خالی بگذارند به قیمت خوبی اجارش دادند بعد رفتند به افغانستان آعرف بیگ پس از دو سال تدریس در دانشگاه کابل به استانبول برگشت اما مدتی نتوانست به خانهاش داخل شود در خانه را مهرموم کرده بودند رفت پرس و کرد و اینها را فهمید مستجرها خانه را گمار خانه کرده بودند پلیس امنیت اخلاقی هم به خانه حمله کرده و 8 نفر را در حال گمار دستگیر کرد. خانه را به همین سبب مهرموم کرده بودند چون کسی برای حل قضیه مراجعه نکرده بود نه ماه بود خانه در وضعیت محرموم مانده بود کسانی که از جلوی خانه رد می شدند فهمیده بودند آنجا قمارخانه بوده عارف بیگ فوری رفت اداره پلیس و وضعیت را توضیح داد رئیس پلیس امنیت اخلاقی دستور داد پرونده را بیاورند گفت بله درسته خونتون رو قمارخونه کرده بودند عارف با عصبانیت گفت من رو هم, هم از موضوع خبر نداره رئیس پلیس امنیت اخلاقی مثل پلیس ها لبخند زد و گفت البته درست میفرمایین فرمایین. خونتون با حکم دادگاه محرومون شده بوده. مدتش هم تموم شده. میتونید برید درخواست فک پلم بدین؟ آرف بگ اولین کارش پس از فک پولوم پخانش این شد که به اداره محل کارش برود. همکارانش از او به خوبی استقبال کردند فقط به نوعی موزیانه می خندیدند. چه موقع می توانست کارش را شروع کند؟ این سؤالش را ا فقط میگفتند بعضی امور باید مراحلش را طی کند. این امور هم هیچ جوری مراحلش را طی نمیکرد. هر بار که به اداره سر میزد همکارانش لبخندهای معناداری میزدند. آخر سر آرف قضیه را فهمید. در اداره پلیس امنیت اخلاقی برای او هم پرونده تشکیل داده بودند. این خنده ها و پچ پچها برای همین بود. پیش چند نفر از آشنایانش رفت که دستی در کار داشتند. در میان این آشنایان حتی چند نفر از دانشجویان سابقش هم بودند. به آنها میگفت آخه مگه امکان داره مگه شما منو نمیشناسید خب معلومه که میشناسیمتون استاد یه اشتباهی شده عارف الان در اداره سابقش کار میکند اما پروندهش در اداره پلیس را نتوانسته ببندند گفتند از دست کسی کاری ساخته نیست پرونده که باز بشود دیگر بسته نمی شود. به آرف بیگ میگویند آقا همه شما رو میشناسن بذارین پرونده باشه خب چه اهمیتی داره آرف بیگ هیچ جوری زیر بار نمی رود. دیگر این نوم و ادی عادی شده دیروز آرف و؟ کدوم عارف عارف قمارباز دیگه؟ <تصفيق> آن وقت طرف میفهمد فهمد که منظور کدام عارف است آرف بیگ نتوانست پرونده را ببندند اما به او میگویند توی پروندتون شعر دادیم که شما با قضیهی قمارخونه هیچ ارتباطی نداریم روزی ممکن است پیش بیاید که بخواهند همه قماربازهای های استانبول را جمع کنند آن موقع به پرونده ها نگاه می کنند و اسم آرف بیک هم در می آید. اما با این شهر که با قضیه قماربازی ارتباطی ندارد. الان آرف بیک هر جا که می نشیند توضیح می دهد که چطور اشتباهی اسمش قاطی قمارباز ها شده البته اگر توضیح هم ندهد همه می دانند زیر سویلی بهش می خندند و می گویند آرف قمارباز अच्छा mm -hmm.